یک شبهه ای در اینجا ممکنه پیش بیاد گاهی یک شب هاتی میکنن مقالتهایی میکنن مقالتهای بیطرف بودن علم که آقا علم رو با سیاست مخلوط نکنید علم بیطرفه. آنچه که بیطرفه است علم در مرحله کشف حقایق بیطرفه. دانش وقتی میخواد که حقیقتی از حقایق عالم هستی را چه حقایق مادی چه حقایق غیرمادی مادی رو کشف کنه طبعا با نمی نمیتونه باید بره و کشف کنه اینجا علم بیطرف، اما علم وقتی در خدمت یک جهتگیری میخواد قرار بگیره به هیچ وجه بیطرف نیست امروز در دنیا اینجور نیست همون کسانی که گایی داد میکشن سر جمهوری اسلامی و سر مجموعه متدین دانشگاهی کشور که آقا علم رو سیاسی کردید علم رو جهاددار کردید همونا خودشون علم رو در خدمت استعمار قرار دادن در خدمت سلطه برملت ها قرار دادن در خدمت به زنجیر کشیدن کشورها قرار دادن استعمار با علم به وجود آمد اگر علم نداشتن نمی‌توانستان استعمار کنن این همه کشورها رو این همه انباشت تسلیحات رو در دنیا این تعداد عظیم جنگ‌هایی رو که غربیها، ها و بعد آمریکا بر دنیا و بر ملت ها تحمیل کردند این همه انسانی که در این راه ها کشته شد از آسیا بگیرید از نقاط دور آسیا تا آفریقا تا آمریکای لاتین چه کردند اینها اینا با علم این کارا علم در خدمت ظلم قرار گرفت در خدمت استكبار قرار گرفت در خدمت سلتگری قرار گرفت چرا در خدمت عدل قرار نگیره چرا در خدمت ها قرار نگیره چرا در خدمت گسترش پیام اسلام که پیام آزادی انسان‌هاست پیام سعادت انسان‌هاست چرا قرار نگیره